دوازده پیرمرد در حسرت جادو در یک روستا کمتر حادثه‌ای رخ دهد که درباره‌اش پرگویی نکنند اسم شاخدار هم همین سرنوشت را داشت چون آن سه نفری که او را در زیر نور ستارگان دیدند در دم ماجرا را برای خانوادههاشان تعریف کردند و بسیاری از آنها از خانهشان بیرون دویدند تا این خبر خوب را برای دیگران بگویند چون در ارل هر خبر غریبی که میتوانست منجر به پرگویی شود خوب شمرده میشد و پس از پایان کار و برای گذراندن شامگاه پرگویی ضروری مینمود بنابراین مدت زیادی به صحبت درباره اسب شاخدار مشغول شدند و پس از یکی دو روز اعضای شورای ارل دوباره در کارگاه نارل جمع شدند و در کنار جامهای شرابشان نشستند و در باره شاخدار بحث کردند. برخی خوشحال بودند که میگفتند اوریون جادویی است چون اسب شاخدار از جنس جادو بود و از آن سوی دشت های ما می آمد. یکی گفت: بنابراین او به سرزمین هایی رفته بوده که نمیتونیم از اونا صحبت کنیم و جادویی. همچون همه چیزهایی که در آنجا می زیند. و برخی تایید کردند و گفتند: نخشه هاشان به نتیجه رسیده است. اما دیگران گفتند که آن جانور اگر میشد گفت جانور در زیر نور ستارگان راه میرفته و که می توانست بگوید یک اسب شاخدار بوده است. و یکی گفت که دیدن او در زیر نور ستارگان دشوار است و دیگری گفت شناختن اسبای شاخدار دشوار است. و سپس مشغول بحث بر روی اندازه و شکل جانوران و همه افسانه های گفته شده درباره آنها شدند. و در این مورد به توافق نرسیدند که فرمان روایشان شاخداری را تعقیب می میکرده است یا نه؟ سرانجام نارل که میدید این گونه به حقیقت دست نخواهند یافت و روشن شدن حقیقت را از هر راهی که میشد یک بار و برای همیشه لازم میدانست برخاست و گفت هنگام رایگیری فرارسیده است. بنابراین به فرمان نارل با شیوهی مخصوص به خودشان درباره اسب شاخدار رأی گیری کردند، بدین ترتیب که صدفهایی را با رنگ‌های گوناگون در شاخی میاندختند و دست به دست میگرداندند. و سکوت برقرار شد و نارل آرا را شمرد و به ناب آرا هیچ اسب شاخداری دیده نشده بود. چون این شد که شورای ارل با افسوس دریافت که نقشه هاشان در داشتن فرمانروایی جادوی شکست خورده است. آنها مردان پیری بودند و اکنون نقشه قدیمیشان برباد رفته بود. رو کردن به نقشه های جدید برایشان دشوارتر از مدت‌ها پیش و هنگامی بود که آن نقشه را کشیده بودند. می گفتند اکنون چه باید بکنند؟ چگونه به جادو دست یابند؟ چه باید بکنند که دنیا ایر را به خاطر بسپارد؟ دوازده پیر مرد بدون جادو؟ در کنار شرابشان نشستند و شراب نتوانست از بار اندوهشان مکاهد. اما اوریون با سگهایش نزدیک خلیج سرزمین پریان بود در مکانی که مد آن سرزمین در اوج خود بود و کم و بیش سبزه های دشت هایی که میشناسیم را لمس میکرد. کرد به هنگام غروب آنگاه که شیپورها به وضوح برای راهنماییش نواخته میشدند به آنجا میرفت و خاموش بر لبه آن دشت ها منتظر می ماند تا اسب شاخدار از مرز بگذرد چون دیگر گوزن ها را شکار نمیکرد و هنگامی که در غروب به سوی آن دشت ها می رفت مردمی که بر روی کشتزار کار می کردند با خوشحالی به او خوش آمد می گفتند اما هنگامی که همچنان برفتن به سوی شرق ادامه می داد کمتر و کمتر با او صحبت می کردند. تا آنجا که سرانجام هنگامی که به مرز نزدیک میشد و همچنان به رفتن ادامه میداد، دیگر به او نمی نگریستند و او سگها را وامی گذاشتند و به کار خود می پرداختند و هنگامی که خورشید غروب می کرد خاموش در کنار پرچینی می استاد که راست به درون توده های شفق میرفت و سگ هایش را در زیر پرچین گرد می آبرد. چشمهایش را به آنها می‌دوخت که مبادا یکیشان تکانی بخورد کبوترها و سارها چهچه چه زنان به خانههاشان بر فراز درختان دشت هایی که میشناسیم باز میگشتند و شیپورهای سرزمین پریان آهنگی جادوین و سیمین می که هوای یخزده را می لرزند و ناگهان رنگهای عبرها دگرگون میشد و در همین فروغ روبه خاموشی در همین تیره شدن رنگها بود که اوریون به انتظار شبه سفید تاری می ماند تا از مرز شفق به بیرون گام بگذارد. فتران غروب درست هنگامی که با دستش یکی از سگها را ساکت کرد درست هنگامی که سراسر دشتهای ما تاریک می شدند از به شاخدار سفید عظیمی از مرز بیرون پرید. هنوز زنبقهایی را که همچون آنان هرگز در هیچیک از دشتهای ما نرویده است در دهان می‌جوید. آن سپیدی آه چهار پنج متر در دشت که می‌شناسیم جلو آمد و همچون محتاب بی حرکت ایستاد و گوش داد و گوش داد و گوش داد اوریون تکان نخورد و با نیرویی که داشت یا با خرد سگها آنها را ساکت نگاه داشت و پنج دقیقه بعد اسب شاخدار یکی دو گام به پیش برداشت و مشغول خوردن سبزه های بلند و شیرین زمینی شد. در همان هنگام که به آنجا رسید اسبهای های شاخدار دیگر از مرز آبی جرف شفق بیرون آمدند و ناگهان پنج اسب شاخدار مشغول چریدن در آنجا شدند و اوریون همچنان با سگهایش منتظر ماند. اندک, اندک از پای شاخدار از مرز دورتر شدند و با سبزههای زمینی بیشتر و بیشتر به درون دشت هایی که میشناسیم فراخوانده شدند اگر سگی پارس میکرد حتی اگر خروسی میخواند گوش های همهشان ناگهان بلند میشد و با دقت به اطراف مینگریستند به هیچ چیز در دشتهای انسانها اعتماد نداشتند و در این دشتها چندان دور نمی رفتند اما سرانجام اصبی که نخست از میان شفق آمده بود چندان از سرزمینش دور شد که اوریون می توانست بین او و مرز قرار گیرد و سکهایش به دنبالش آمدند و اگر اوریون این کار را به بازی گرفته بود و اگر تنها برای هوس بیهوده شکار می کرد و نه برای عشق جرف به هنر شکارگران که تنها آنان می شناسند، آنگاه همه چیز را از دست می داد. چون سگهایش به دنبال نزدیک ترین شاخدار می رفتند و اسبها در یک دم از مرز می و از دست می رفتند. و اگر سگها به دنبالشان می رفتند، آنها هم گم می شدند و زحمات تمامی آن روز به خاطر هیچ برباد می رفت. اما اوریون سگهایش را به تعقیب دورترین اسب شاخدار راهنمایی کرد و مراقب بود که هیچ کدام از سگها به دنبال عصبهای دیگر نرود فقط یکی از سگها به دنبال اسب دیگری رفت اما تازیانه اوریون آماده بود و بنابراین راه رسیدن شکارش را به خانه اش برید و سگهایش برای دومین بار به دنبال یک اسب شاخدار پارس می کردند تا اسب شاخدار صدای پای سگها را شنید و با یک نگاه دریافت که نمی به سرزمین جادویش بازگردد با حرکتی ناگهانی همچون پیکانی به درون دشت هایی که می تاخت. هنگامی که به پرچین ها رسید برای جهش پاهایش را جمع نکرد و گویی بدون انقباز ماهیچه هایش از روی پرچین ها به آن سو لغزید و پس از این که پاهایش دوباره به سبزه ها رسیدند باز به پیش تاخت. در اولین یورش سگها از اوریون بسیار جلو افتادند و به همین دلیل اوریون می توانست اسب شاخدار را هنگامی که کوشید به سرزمین جادویی بازگردد دور کند و در این رفت و برگشت دوباره به سگهایش نزدیک شد. و سومین باری که اوریون اسب شاخدار را برگرداند اسب برگشت و راست به درون دشت های تاخت. دوزه سگ‌ها در آرامش آن غروب همچون موج بزرگی بود که در اثر شیرجه شناگری بر سطح یک دریاچه خفته پدید می‌آید در آن تاخت مستقیم شاخدار چنان از هگ‌ها پیش افتاد که کمی بعد اوریون او را تنها از دور ها و به شکل نقطه کوچکی در تاریکی بر روی یک سراشیبی می‌دید سپس به بالای یک دره رسید و از دید بیرون رفت اما بوی شگفتانگیز و نیرومندی که همچون ترانهی سگها را راهنمایی میکرد، می کرد، همچنان به وضوح بر روی سبزه ها مانده بود و سگها نه ایستادند و نه تردید کردند مگر دمی در کنار یک جوی بار حتی آن هنگام هم پیش از رسیدن و راهنمایی کردن اوریون بینی های تیزشان آن بوی جادویی را دنبال می کرد. و همچنان که شکار ادامه می آفت، نور روز از میان رفت و آسمان برای ظهور ستارگان آماده شد و یکی دو ستاره پدیدار شدند و مه سفیدی از جویبارها برخاست و بر همه دشتهای ما گسترد به طوری که اگر اسب شاخدار در نزدیکیشان هم بود نمی توانستند ببینندش درختان به خواب رفته می نمودند. از کنار خانه های کوچک و تنهای پناه گرفته در میان ناربنها و به دور از آن سرگردانان دشتها در میان پرچین‌های ساخته شده از سرخدار گذشتند. خانه هایی که اوریون هرگز ندیده و نشناخته بود، تا هنگامی که این اسب شاخدار ناگهان او را به گذر از کنار این درها کشنده بود. سگها به هنگام گذر پارس می و پس از آن هم همچنان به پارس کردن ادامه می‌دادند، چون آن بوی جادویی پخش شده در هوا، و آن یورش و صدای آن شکار از چیزی غریب در پیش روشان حکایت می کرد و نخوست پارس می کردند چون می خواستند در آنچه در پیش بود شریک باشند و پس از آن پارس می کردند چون می اربابشان را از غرابت سید آگاه کنند در سراسر آن شامگاه پارس کردند و نایهان هنگامی که از کنار خانه ای در میان بوته های خار گذشتند در این ناگهان باز شد و زنی خیره به گذشتن آنها در بیرون در ایستاد نمیتوانست جز چندین شبه خاکستری چیزی ببیند اما اوریون در هنگام گذرش درخشش خانه را دید و نور زردی را که به درون سرما جریان میافت آن گرمای آرام بخش روحش را تازه کرد و دلش میخواست در آن کلبه کوچک انسانها در آن دشتهای خلوت دمی استراحت کند اما سگها پیش رفتند و او هم به دنبالشان رفت و ساکنین خانه‌ها فریادشان را شنیدند که محو میشدند. همچون صدای شیپوری که تنین آن در دورترین تپه ها محف میشود روباهی صدای آمدنشان را شنید و خاموش ایستاد و گوش داد اول گیت شده بود سپس بوی اسب شاخدار به مشامش رسید و همه چیز برایش روشن شد چون از آن بوی جادوی دریافت که موجودی از سرزمین پریان میآید. اما هنگامی که گوزفند ها این بو را استشمام کردند ترسیدند و در حالی که به هم می‌خوردند، چندان دویدند که بیش از آن نمی توانستند گله ها از خواب پریدند و خوابالود خیره و شگفت زده شدند اما اسب شاخدار از میان آنان گذشت و دور شد همان که نسیمی با عطر گل سرخ از باغ‌های یک دره میگذرد و به خیابان‌های شهری می‌رسد و از میان ترافیک پر سر و صدا می‌گذرد و دور می‌شود کمی بعد تمامی ستارگان به دشتهای خاموشی مینگریستند که شکار پیروزمندانه در آنها جریان داشت و خطی از زندگی بیرحمانه خواب و خاموشی را می‌شکافت و اکنون اسب شاخدار هرچند از دید دور بود دیگر در کنار پرچینها پیش نمیافتاد. چون نخواست به هنگام گذر از پرچینها بیشتر از پرندهای درنگ نمیکرد که از میان ابر می گذرد. اما سگها با زحمت از میان شگاف هایی میگذشتند که می توانستند در پرچین بیابند. و گاهی بر زمین چون باطمه می میزدند و از میان ساقه های بوته ها می خزیدند. اما اکنون در کنار هر پرچین نیرویش را با زحمت بیشتری جمع می کرد و گاهی به بالای آن برخورد می کرد و تلو تلو می خورد. نیز آهسته تر می تاخت چون این سفری بود در آرامش سرزمین پریان که هیچ اسب شاخ شاخداری نکرده بود و احساسی به سکهای خسته می گفت که دارند نزدیک می و شادی جدیدی در صداهایشان پدیدار شد. چند پرچین سیاه دیگر را هم پشت سر گذاشتند و سپس تاریکی جنگل در برابرشان تجلی کرد. هنگامی که به شاختار به درون جنگل رفت، صدای سگها در گوشش می پیچید. یک جفت روباه او را دیدند که آهسته می رفت و کنارش شروع به دویدن کردند تا ببینند چه بر سر این موجود جادوی خسته خواهد آمد که خسته از سوی سرزمین پریان می آید. در هر طرفش یکی از روباه‌ها میدویدند و فرار آهسته را تماشا می‌کردند و هرچند چند صدای سگها را می‌شنیدند هیچ ترسی از آنها نداشتند چون می‌دانستند کسی که آن بوی جادویی را دنبال می‌کند به دنبال موجودی زمینی نمیافتد. بدین ترتیب اسب شاخدار با خستگی در میان جنگل می‌رفت و در تمام راه روباها با کنجکاوی تماشایش می‌کردند سگها وارد جنگل شدند و بلطهای عظیم صدای آنها را تنینانداز شد و اوریون با سرعتی خستگی ناپذیر که شاید آن را از دشتهای ما به دست آورده بود و شاید هم از آن سوی مرز از سرزمین پریان گرفته بودش به دنبال آنها آمد. تاریکی جنگل ژرف بود. اما فریاد سگهایش را دنبال میکرد و آنها هم با آن بوی شگفتانگیز که راهنماییشان میکرد. نیازی به دیدن نداشتند به هنگام تعقیب آن هرگز منحرف نشدند و راست در میان تاریکی و در زیر نور ستارگان پیش رفتند این شکار همچون شکار روباه یا گوز نبود چون ممکن است روباه دیگری از مسیر یک روباه بگذرد یا ممکن است گوزن به میان گلهی از گوزنها برود و پنهان شود حتی ممکن است گلهی گوسفند از مسیر سکها بگذرند و آنها را سردرگم کنند اما آن شب این اسب شاخدار تنها موجود جادویی در دشتهای ما بود و بوی اشتباه ناشدنیش بر روی سبزههای زمینی باقی می ماند. بویی تیز و سوزان از جادو در میان اشیای روزمره. در میان جنگل تا در دنبالش کردند و دروبا همچنان کنارش میدویدند و تماشا می‌کردند. هنگامی که از تپه پایین می‌رفت. پاهایش را با دقت بر گویی به هنگام فرود از سراشیب وزنش پاهایش را میازرد اما هنوز با همان سرعت سگها پیش میرفت سپس کمی در طول در رپیش رفت و تا توانست از تپه پایین رفت به چپ پیچید، اما در این هنگام سگها به او رسیدند و این به سوی سراشیب روبرو رو گشت و سپس دیگر نمی توانست خستگیش را که همه جانوران وحشی تا آخرین لحظه پنهان میکنند پنهان کند. برای برداشتن هر گام تقلا میکرد گویی پاهایش بدنش را به سنگینی میکشیدند. اوریون او را از سرراشی به, به رو دید. هنگامی که اسب شاخدار به بالای تپه رسید، سگها درست پشت سرش بودند. بنابراین ناگهان برگشت و رو روی آنها ایستاد و تکشاخش را رو به آنها گرفت. سگها هااتش کردند اما شاخش را با چنان چابکی سرعتی به نوسان در می آورد که هیچکدام نمی توانستند به او دست یابند. هنگامی که آن شاخ را دیدند مرگ پیش چشمشان ظاهر شد و هر چند مشتاق پریدن بر روی او بودند خود را از آن شاخ درخشان واپس کشیدند. سپس اوریون با کمانش رسید اما تیراندازی نکرد. شاید چون انداختن پیکانی که به سگهایش آسیب نرساند دشوار بود یا شاید به خاطر احساسی که ما امروز داریم و در میان ما چیز نوینی نیست یعنی احساس اینکه انجام دادن این کار با اسب شاخدار منصفانه نیست به جای آن شمشیر کوهنه ای را که با خود داشت بیرون کشید و از میان سگهایش گذشت و با آن شاخ مرگبار درگیر شد و اسب شاخدار انهنایی به گردن داد و شاخ به سوی اوریون درخشید و هرچند اسب شاخدار خسته بود اما هنوز نیروی شگرف در آن گردن ماهیچه مانده بود که می توانست حمله اوریون را دفع کند و اوریون به زحمت دفاع کرد به گلوی اسب شاخدار حمله برد اما آن شاخ عظیم شمشیر او را به کناری زد و دوباره حمله کرد اوریون دوباره با تمام نیرویی که در بازو داشت دفاع کرد و حمله آن شاخ را از یک سانتیمتری خود دفع کرد دوباره به گلوی اسب حمله برد و عصب شاخدار تقریباً بلا فاصله حمله شمشیر را دفع کرد سپس دوباره و دوباره به قلب اوریون حمله برد گام به گام پیش میرفت و اوریون را به عقب میراند آن گردن کشیده زیبا با انهنای سفید ماهیچه های نیرومندی که شاخ را هدایت میکردند کم کم بازوی اوریون را خسته میکرد اوریون یک بار دیگر حمله کرد و موفق نشد چشم های اسب شاخدار را میدید که شریرانه در نور ستارگان میدرخشیدند. آن انهنای سراسر سفید و وحشتناک گردن اسب را میدید و میدانست دیگر نمیتواند حمله های سنگین او را دفع کند. و سپس سگی بر روی شانه راست اسب شاخدار پرید. در اندک زمانی سایر سگها هم بر روی اسب شاخدار پریدند و هر کدام به یک جای او چنگ انداختند، همچون گروهی از اوباش شده بودند که به طور تصادفی میچرخند و حرکت میکنند. اوریون دیگر حمله نکرد چون ناگهان سگهای بسیاری بین او و گلوی دشمنش قرار گرفتند. صدای ناله های وحشتناکی از اسب شاخدار به گوش می رسید چون این صداهایی در دشتهایی که میشناسیم شنیده نمیشوند. و سپس دیگر صدایی شنیده نشد. مگر صدای خورخور جرف سگها، که بر روی آن جسد شگفتانگیز میقریدند و در خون افسانهایش قوطه می‌خوردند. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها. هایی از غولها و کوطول ها ماشرههایی از جادوگرها،